مازموده ما ایم در این شهر بخت خیش بیرون کشید باید از این ورد رخت خیش از بس که دست میگزم و آه میکشم آتش زدم چو گل به تن لخت لخت خیش دوشم ز بلولی چه خوش آمد که میسرود گل گوش پند کرده ز شاخ درخت خیش که دل تو شاد باش که آن یار توند خوب بسیار توند روی نشیند زبخت خیش خواهی که سخت و سست جهان بر تو بگذرد بگذر زعت سست و سخنهای سخت خیش وقت است که از فراغ تو و سوز اندرون آتش درف کنم به همه رخت و فخت خیش ای حافظر مراد میستر شدی مدام جمشید نیز دور نمان دیز تخت فیش